عشق به خود گرچه کاربرد مفهوم عشق به چیزهای گوناگون اعتراضی بر ولی اعتقاد عمومی بر این است که هر چند دوست داشتن دیگران فضیلت است دوست داشتن خود گناه است چون این تصور می شود من به اندازه که خود را دوست دارم دیگران را دوست ندارم و عشق به خود همان خودخواهی و خودپسندی است این نظر در تفکر غربی تاریخی طولانی دارد. کالوین از عشق به خود به عنوان تا اون صحبت می کند. فروید عشق به خود را از لحاظ رواندرمانی مورد بحث قرار می دهد. ولی ارزش قضاوت او همانند ارزش قضاوت کالوین است. در نظر وی عشق به خود همانند خودفریفتگی و بازگشت لیبیدو به سوی خود است. خودفریفتگی ابتدایی ترین مرحله رشد انسانی است و شخصی که بعداً دوباره به این مرحله بازگشت می کند دیگر ناتوان از عشق ورزیدن است نهایت این حالت دیوانگی است فروید تصور می کرد که عشق تجلی لیبیدو است و لیبیدو یا به سوی دیگران متوجه می شود که در این صورت عشق است و یا به سوی خود شخص معطوف می گردد که در این صورت عشق به خود است عشق و عشق به خود متقابلا مانع یک دیگرند. بدین معنی که هر قدر یکی از آنها بیشتر باشد، دیگری کمتر است. اگر عشق به خود بد باشد، پس نتیجه این می شود که توازع و عدم خودخواهی فضیلت به حساب میآید. در اینجا این سوالات مطرح می شوند. آیا مشاهدات روانشناسی فرضیه تضاد عمده بین عشق به خود و عشق به دیگران را تایید کند؟ آیا عشق به خود همان پدیده خودخواهی است یا این دو ضد یکدیگرند؟ علاوه بر این، آیا خودخواهی انسان امروزی واقعا نوعی علاقه به خود به عنوان یک فرد با تمام استعدادهای بالقوه عقلی، عاطفی و جسمانی است؟ آیا او به زمینه نقش اجتماعی اقتصادی خیش بدل نشده است آیا خودخواهی او عینا عشق به خیشتن است و آیا درست به علت فقدان آن به وجود نیامده است قبل از اینکه به بحث درباره جنبه روانشناسی خودخواهی و عشق به خود بپردازیم باید معکدا بگوییم در این عقیده که میگوید عشق به خود و عشق به دیگران متقابلا مانع یکدیگرند، نوعی صفزته منطقی وجود دارد. اگر دوست داشتن همسایه به عنوان یک انسان فضیلت به حساب می آید، دوست داشتن خود نیز باید فضیلت باشد، نرزالت. چرا که من هم انسانم. هیچ تعریفی از انسان وجود ندارد که مرا دربر نگیرد. هر نظریه‌ای که چنین استثنایی را مجاز بشمارد ثابت می‌کند که در اساس آن تناقض وجود دارد این جمله کتاب مقدس همسایت را مانند خود دوست بدار این اندیشه را میرساند که احترام به یگانگی و یکتا بودن خود انسان عشق به خود و درک خود نمی‌تواند از احترام به عشق و تفاهم نسبت به افراد دیگر جدا باشد عشق به خود با عشق به دیگران پیوندی ناگسستنی دارد. اکنون ما به شالوده های اساسی روانشناسی رسیده ایم که نتیجه گیری های بحث ما بر آنها استوار است. به طور کلی این شالوده ها از این قرارند. نه تنها دیگران بلکه خود ما موضوع احساسها و نگرش های خودمان هستیم. نگرش های ما نسبت به دیگران و نسبت به خودمان قبل از اینکه که متناقض باشند، اساسا پیوند دهنده اند. با توجه به مسئله مورد بحث مفهوم آن چنین می شود. عشق به دیگران و عشق به خود با هم ناسازگار نیستند و یکی دیگری را نفی نمی کند. برعکس، در کلیه کسانی که قادرند دیگران را دوست بدارند همواره نوعی عشق به خود نیز دیده می شود. در اصل، عشقی که منظور از آن پیوندی بین معشوق و خود شخص می باشد، قابل تفکیک و جدایی پذیر نیست. عشق اصیل، باروری و دلسوزی، احترام و احساس مسئولیت و دانش و شناخت را میرساند. اشق عشق واقعی یک تعثر به معنی تحت تأثیر دیگری قرار گرفتن نیست. بلکه کوشش است برای رشد خوشبختی معشوق که ریشه آن در استعداد عشق ورزیدن خود شخص قرار دارد. عشق به یک نفر به معنای تحقق و تمرکز نیروی عشق ورزیدن خود شخص قرار دارد. عشق به یک نفر به معنای تحقق و تمرکز نیروی عشق ورزیدن خود شخص است. اثبات اساسی عشق به طرف معشوق میل می کند. معشوقی که تجسمی از صفات واقعی انسانی است. عشق به دیگری به معنای عشق انسانیت است. آن نوع تقسیم کاری که ویلیام جیمز از آن نام می برد که به استناد آن شخص فقط خانواده خود را دوست دارد و احساسی به بیگانه ندارد نشانه ناتوانی شدید در عشق ورزیدن است. عشق به انسان بدانگونه که غالبا تصور می شود تجریدی نیست که پس از عشق به فردی خاص به دنبال آن ظاهر شود بلکه خود اصل نخستین و مقدم آن است. گرچه از نظر ژنتیک عشق از عشق ورزیدن به اشخاص مشخص کسب می شود از همه اینها چونین نتیجه گرفته می شود که خود نیز باید مانند شخصی دیگر موضوع عشق قرار گیرد اثبات زندگی خود سعادت رشد و آزادی خیش ریشه در استعداد عشق ورزیدن شخص دارد یعنی دلسوزی احترام احساس مسئولیت و شناخت اگر فردی بتواند به طور سمر عشق بورزد، خود را نیز دوست خواهد داشت. کسی که فقط بتواند دیگران را دوست بدارد، اصلاً نمیتواند عشق بورزد. اگر قبول کنیم که عشق به خود و دیگران در اصل پیوندهنده اند، آنگاه خودخواهی را که آشکارا فاقد علاقمندی به دیگران است چگونه میتوان توضیح داد. آدم خودخواه فقط به خودش علاقه دارد. همه چیز را برای خودش می خواهد و نه از ایثار بلکه فقط از گرفتن لذت می برد. به دنیای خارج فقط از دیدگاه نفع شخصی می نگرد. به نیازهای دیگران بیاعتناست و به شعن و فردیت دیگران احترام نمیگذارد. او جز خود هیچ چیز را نمی بیند. او درباره همه کس و همه چیز از نقطه نظر سودمندی برای خیش قضاوت می کند و اساسا قادر به عشق ورزیدن نیست. آیا این ثابت نمی کند که علاقه به دیگران و علاقه به خود دو ضد گریز نپذیرند؟ این فقط در صورتی صحیح است که خودخواهی و عشق به خود را یکی بدانیم. اما این فرض همان سفسته ای است که موجب شده است این همه نتیجه گیری های غلط در مسئله مورد بحث ما پیدا شود. خودخواهی و عشق به خود نه تنها یکی نیستند بلکه در واقع ضد یکدیگرند. آدم خودخواه خود را نزیاد بلکه کم دوست دارد. در واقع او از خیشتن احساس تنفر میکند. این فقدان علاقه و دلسوزی نسبت به خیش که فقط یکی از تجلیات بی اوست و ایرا میانتوهی و ناکام و سرخورده می کند. او به ضروره آدمی بدبخت است و با تشویش و نگرانی در این فکر است تا لذاتی را که خود بر خود دریق داشته است از زندگی برو باید به نظر می رسد که او بیش از حد در فکر خیش است اما در واقع کوشش ناموفقی می کند تا شکست خود را در رسیدن و توجه به خود واقعیش بپوشاند و به عناوین گوناگون آن را جبران کند. فروید معتقد است که فرد خودخواه خودفریفته است و گویی عشق خود را از دیگران دریخ کرده و همه را به سوی خیش معطوف داشته است. این درست است که آدمهای خودخواه توانایی مهر ورزیدن به دیگران را ندارند. ولی در این حال آنها قادر نیستند خودشان را هم دوست بدارند اگر خودخواهی را با توجهات آزمندانه دیگران مثلا به گونه که در پیش مادران بیش از حد دلنگران میبینیم مقایسه کنیم آن را بهتر درک میکنیم در چنین مادرانی که آگاهانه معتقدند علاقه مخصوصی به فرزند خیش دارند در واقع نوعی خصومت سرکوب شده نسبت به فرزند وجود دارد دلنگرانی بیش از حد آنان نه به خاطر این است که بچه را زیاد از حد دوست دارند، بلکه بدین سبب است که به هر حال مجبورند عدم توانایی مهر ورزیدن به کودک را به نوعی جبران کنند. نظریه ای را که درباره طبیعت خودخواهی آوردیم، مولود روانکاوی بیماران مبتلا به ناخودپسندی نوروتیک است. این ناخودپسندی یکی از علائم نوروسیس است، که در عده ای نه چندان کم مشاهده می شود و معمولاً نه به این دلیل بلکه به دلایل دیگری که در ارتباط با آن هستند مانند افسردگی، خستگی، عدم توانایی کار شکست در روابط عاشقانه و غیره می باشد پسندی نه تنها به منزله علامت بیماری تلقی نمی شود بلکه مبتلایان به آن این علامت را صفت نجات بخشی می‌دانند که اتصاف به آن را برای خود فخری بزرگ می‌شمارند شخص ناخودپسند هیچ چیز را برای خود نمی‌خواهد او فقط برای دیگران زندگی می‌کند و به خود می‌بالد که برای خیش اهمیتی قائل نیست چون این افرادی علا رغم خیش در چه گفتند که چرا باز هم خوشبختی را احساس نمی کنند و چرا در رابطه با نزدیکترین کسانشان احساس خورسندی و سیرابی نمی کنند. تحلیل دقیق نشان می دهد که ناخدپسندی او از سایر علایم بیماریش جدا نیست بلکه یکی از آنهاست در واقع یکی از مهمترین آنهاست قدرت عشق ورزیدن و لذت بردن در او فلج شده است. کینه به زندگی در اعماغ هستی او ریش دوانیده است. و در پشت چهره ناخودپسندی، نوعی خودگرایی زیرکانه و ظریف اما شدید پنهان است. چون این فردی تنها زمانی درمان می شود که ناخدپسندیش نیز همانند علایم دیگر بیماری تلقی شود، تا دین ترتیب، بی سمری و عدم باروری او که ریشه ناخودپسندی و ناراحتی‌های دیگر اوست، درمان شود. ماهیت ناخودپسندی بخصوص وقتی روی دیگران اثر می‌گذارد و قالبا در فرهنگ ما در اثری که مادران ناخودپسند روی کودکان خود می‌گذارند، به وضوح دیده می‌شود. مادر ناخودپسند فکر می کند که در نتیجه ناخودپسندی او کودکانش معنی محبوب بودن را احساس می‌کنند و به موقع نیز می‌فهمند دوست داشتن یعنی چه اما اثر ناخودپسندی او ابدا توقعات او را بر نمی‌آورد خوشحالی و نشاط کودکانی که یقین دارند محبوب هستند در این نو کودکان دیده نمی‌شود آنها مسترب و بیقرارند و از نامقبول شدنشان در نزد مادر حراسانند و همواره با حالتی مسترب در این فکر هستند تا انتظارات مادر را به جای آورند خصومت پنهانی مادر نسبت به زندگی در آنها اثر می‌گذارد و کودکان بیش از آنکه آن را به وضوح درک کنند احساس می‌کنند و سرانجام خود نیز بدان خصومت آلوده می‌شوند روی هم رفته اثر مادر ناخودپسند و مادر خودخواه در بچه چندان فرقی با یکدیگر ندارد. در واقع اثر اولی غالبا بدتر و شدیدتر است زیرا ناخودپسندی مادر به کودک امکان انتقاد از او را نمیدهد. کودکان مقید هستند که مادر را ناراضی نسازند و زیر نقاب فضیلت تنفر از زندگی به آنان نامخته شود. اگر فرصتی دست میداد و میتوانستیم اثر مادری را که حقیقتاً به خود عشق میوررزد مطالعه کنیم، در میافتفتیم که هیچ چیز به اندازه بهرهمندی از محبت چنین مادری که خود را دوست دارد کودک را به درک معنی عشق، شادمانی و خوشبختی رهنمون نمیشود. نظراتی را که درباره عشق به خود ابراز شده است، نمیتوان بهتر از آنچه مایستر کارت در این باره بیان کرده خلاصه کرد. اگر تو خود را دوست داری، دیگران را نیز مانند خودت دوست داری. تا وقتی که دیگری را کمتر از خودت دوست داری، در دوست داشتن خودت هم موفقیت واقعی کسب نخواهی کرد. ولی اگر همه را از جمله خودت را به طور یکسان دوست بداری، آنگاه همگی را به منزله یک شخص واحد دوست خواهی داشت و آن هم خداست و هم انسان. بنابر این آن کسی درست کار و بزرگ است که ضمن دوست داشتن خود همه را به تصاوی دوست بدارد.